مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و و هفتم حکایت اشتر و گاو و کچ. که در راه بند گیاه یافتند هر یکی می گفت من خورم اشترو گاو و قچه در پیش راه یافتند اندر روش بند گیاه گفت قچ بخشر کنیم این را یقین هیچ کس از ما نگردد سیر از این. لیک، عمر هر که باشد بیشتر، این علف او راست اولا. گو بخور، که اکابر را مقدم داشتن، آمدست از مصطفی اندرسنن گرچه پیران را در این دور لعام، در دو موزه پیش می دارند آم، یا در آن لوته که آن سوزان بود یا بران پل که از خلال ویران بود خدمت شیخ بزرگ قایده آم نارد به قرینه فاسده غیرشان این است چه بود شرشان قبهشان را بازدان از فرشان مسل سوی جامع می یک شهریار خلق را می زد نقیب و چوبدار آن یکی را سرشکستی شکستی چوب زن واندگر را بردریدی پیرهن در میانه بی دل ده چوب خورد بی گناه که برو از راه برد خونچکان رو کرد با شاه و بگفت ظلم ظاهر بین چه پرسی از نهافت. خیر تو این است جامع میروی تا چه باشد شر و وزرت ای قوی یک سلام نشنود پیر از خسه، تا نپیچد عاقبت از وی بسه. گرگ دریابد ولی را به بود، زان که دریابد ولی را نفس بد، زان که گرگ، ارچه که بس استمگره است، لیکشان فرهنگ و کید و مکر نیست. ورنکه اندر فتادی و دام مکر اندر آدمی باشد تمام. گفت قچ با گاو و اشتر ای رفاق، چون چونین افتاد ما را اتفاق، هر یکی، تاریخ عمر ابدا کنید پیرتر اولاست باقی تنزنید گفت قچ مرج من اندر آن احود با قچ قربان اسماعیل بود گاو گفتا بودم من سال خورد جفت آن گاوه کش آدم جفت کرد جفت آن گاوم کش آدم جد خلق در زراعت بر زمین می کرد فلق چون شنید از گاو و قچ اشتر شگفت سر فرو آورد و آن را برگرفت در هوا برداشت آن بند قصیل اشتر بختی سبک بیقال و قیل که مرا خود حاجت تاریخ نیست که این چونین جسم و عالی گردن است. خود همکس کس داند ای جان پدر که نباشم از شما منخورد تر. داند این را هر که زصحاب نهاست که نهاد من فزونتر از شماست. جملگان دانند که این چرخ بلند هست صد چندان که این خاک نژند. کو گشاد رقعه آسمان، کو نهاد بقعه خاکدان. جواب گفتن مسلمان آنچه دید بیارانش جهود و ترسا و حسرت خوردن ایشان، پس مسلمان گفت ای یاران من پیشم آمد مصطفی سلطان من پس مرا گفت آن یکی بر تور تاخت با کلیم حق و نرد عشق باخت واندگر را ایسی صاحب قران بارد بر اوج چهارم آسمان خیز ای پس دیده دید زرر باریان حلوا و یخنی را بخور آن هنرمندان پرفن راندند، نامه اقبال و منصب خاندند. آن دو فاضل فضل خود دریافتند، با ملایک از هنر در دربافتند. ای سلیم گول و پسماندهین برجه و برکاسه حلوانشین. پس بگفتندش که آنگه تو حریس ای عجب خردیز حلوا و خبیس گفت چون فرمود آن شاه متا من که بودم تا کنم زان امتنا تو جهود از امر موسا سرکشی گربخانت در خوشی یا ناخوشی تو مسیحی هیچ از امر مسیح سرتبانی تافت در خیر و قبیح من ز فخر انبیا سر چون کشم خورده ام حلوا و ایندم دم سرخوشم پس بگفتندش که والله خواب راست تو بدی دیوین به از صد خواب ماست. خواب تو بیداری است ای بوبتر که به بیداری ایانستش اثر درگذر از فضل و از جلدی و فن کار خدمت دارد و خلق حسن. بهر این آبردمان یزدان برون ما خلقتل انس الا یعبدون سامری را آن هنر چه سود کرد؟ کانفن از باب باباللهش مردود کرد. چه کشید از کیمیا قارون ببین که فرو بردش به قهر خود زمین؟ حکم آخر چه بربست از هنر سرنگون رفت اوز کفران در سقر؟ خود هنر آن دان که دید آتش ایان، نه کپ دل النار دخان، ای دلیلت گندتر پیش لبیب در حقیقت از دلیل آن تبیب چون دلیلت نیست جز این ای پسر گوه می خور در کمیزی می نگر ای دلیل تو مثال آن عصا در کفت دل علی عیبل اما غلغل و تاق و گیر و دار که نمی بینم مرا معظور دار منادی کردن سید ملک ترمیز که هر که در سه یا چهار روز به سمرقند رود به فلان مهم، خلعت و اسب و غلام و کنیزک به چندین زر هم. و شنیدن دلقک خبر این منادی در ده، و آمدن به اولاقی نزد شاه که من بار نتوانم رفتن، سید ترمز که آنجا شاه بود، مسخره او دلقک آگاه بود. داشت کار در سمرقند او مهم، جست اولاق تا شود او مستتم. زد منادی، هر که اندر پنج روز، آره دمزانجا خبر بدهم کنوز. دلقک اندر ده بود و آن را شنید، برنشست و تا به ترمز می دوید، مرکب دو اندران ره شد سقط، از دوانیدن فرس را زان نمت. پس به دیوان در دوید از گرد راه، وقت ناهنگام ره جست او شاه، فجفج در جمله دیوان فتاد، شورش در وهم آن سلطان فتاد. و آم شهر را دل شد زده است، تا چه تشویش و بلا، حادث شده است یا عدوی قاهر در قصد ماست یا بلای مهلک از غیب خواست که زده دلق به سیران درشت چند اسب تازی اندر راه کشت جام گشته بر سرای شاه خلق تا چرا آمد چنین اشتاب دلق از شتاب او و فحش اجتهاد، قلغل و تشویش در ترمز فتاد. آن یکی دودست بر زانو زنان، باندگر از وهم وابیلا کنان. از نفیر و فتنه و خوف نکال، هر دل رفته بسد کوه خیال. هر کس فال همه زد از قیاس، تا چه آتش افتاد اندر پلاس؟ راه جست و راه دادش شاه زود چون زمین بوسید گفتش هی چه بود هر که می پرسید حال زانتورش دست بر لب می او که خاموش و هم می افزود زین فرهنگ او جمله در تشویش گشته دنگ او کرد اشارت دق که شاه کرم یک دم بگذار تا من دم زنم تا که باز آید به با من اقلم دمه که فتادم در اجایب آلمه بعد یک ساعت که شه از وهم و زن تلخ گشتش هم گلو و هم دهن که ندیده بود دلقک را چونین که از او خوشتر نبودش هم نشین دایما داستان دستان و لاغ افراشتی شاه را او شاد و خندان داشتی آنچنان خندانچ کردی در نشاست که گرفتی شاه شکم را با دو دست که زور خنده خی کردی تنش رودر افتادی ز خنده کردنش باز امروز اینچنین زرد و تروش دست بر لب میزند که شاه خاموش وهم در وهم و خیال اندر خیال شاه را تا خود چه آید از نکال که دل شه با غم و پرهیز بود زان که خارم شاه بس خونریز بود بس شهان آن طرف را کشته بود یا به یا به ستوت آن انود این شه ترمز از او در وهم بود وصفن دلقک خودان وهمش فزود. گفت زودتر بازگو تا حال چیست؟ اینچنین آشوب و شور تو زکیست گفت من در ده شنیدم آنکه شاه زد منادی بر سر هر شاه راه که کسی خواهم که تازد در سه روز تا سمرقند و دهم او را کنوز من چه تابیدم بر تو بحر آن تا بگویم که ندارم آن توان این, این چستی نیاید از چمن بار این امید را بر من متن گفت شه لعنت بر این زودی باد که دو صد تشویش در شهر افتاد از برای این قدر ای خامریش آتش افگندی در این مرج و هشیش همچو این خامان با تبل و علم که اولاقانیم در فقر و عدم لاف شیخی در جهان انداخته خیشتن را با یزیده ساخته همز خود سالک شده واصل شده محفل وا کرده در دعوا کده خانه داماد پر آشوب و شر قوم دختر را نبوده زین خبر. ولوله که کار نیمه راست شد. شرطهای که ز سوی ماست شد. خانه ها را روفتیم آراستیم. زین حوث سرمست خوش برخواستیم. زان طرف آمد یکی پیغام نی؟ مرغ آمد این طرف زانبام نی؟ زین سالات مزید اندر مزید یک جواب زان حوالی تان رسید نه ولیکن یار ما زین آگه است که از دل سوی دل لابد ره است پس از آن یاره که امید شماست از جواب نامه ره خالی چراست صد نشان است از سرار و از جهار لیک بس کن پرده زیندر بر مدار باز رو تا قصه آن دلق گول که بلا برخیش آورد از فضول. پس وزیرش گفت ای حق راستون بشنو از بندی کمینه یک سخن. دلقک از ده بهرکار آمده است. رای او گشت و پشیمانش شده است. زاب و روغن، کهنه را نو می کند او به مسخرگی برونشو می کند غمد را بنمود و پنهان کرد تیغ باید افشردن مرو را بیدریغ پسته را یا جوز را تا نشکنی نه نماید دل نه بدهد روغنی مشنو این دفع وی و فرهنگ او در در ارتعاش و رنگ او. گفت حق سیما هم و فی وجههم هم. زن که غماز است سیما و منم. این معاین هست ضد آن خبر. که بشر بسرشته آمد این بشر. گفت دلقک با و با خروش. صاحب در خون این مسکین مکوش بس گمان و وهم آید در زمیر کان نباشد حق و صادق ای امیر ان بعض از زنه است ای وزیر نیست استم راست خاصه بر فقیر شه نگیرد آنکه می رنجاندش از چه گیرد آنکه می خنداندش گفت صاحب پیش شه جاگیر شد کاشف این مکر رو این تذویر شد گفت دلقک را سوی زندان برید چاپلوس و زرق او را کم خرید میزنیدش چون دهل اشکم تهی تا دهلوار او دهد من آگهی تر و خشک و پر و تی باشد دهل بانگ او آگاه کند ما را زکل تا بگوید سر خود از استرار آنچنان که گیرد این دلها قرار چون تمانی است صدق با فروغ دل نیار آمد به گفتار دروغ کذب چون خس باشد و دل چون دهان خس نگردد در دهان هرگز نهان تا درو باشد زبان می زند. تا بدانش از دهان بیرون کند خواست که در چشم افتد خس زباد چشم افتد در نم و بند و گشاد ما پس این خس را زنیم اکنون لگد تا دهان و چشم از این خاص باره هد. گفت دلقک ای ملک آهسته باش. روی حلم و مخفرت را کم خراش. تا بدین حد چیست تعجیل نقم. من نمی پرم به دست تو درم. آن ادب که باشد از بحر خدا اندران مستعجلی نبود ربا. وان که باشد تب و خشم آریزی می شتابد تا نگردد مرتزی. ترس در آید رضا خشمش رود انتقام و ذوق آن فایت شود. شهوت کاذب شتابد در تعام. خوف فوت ذوق هست آن خود سقام. اشتها صادق بود تاخیر به. تا گواریده شود آن بگره، توپه دفعه بلایم میزنی، تا ببینی رخنه را بندش کنی، تا از آن رخنه برون ناید بلا، غیر آن رخنه بس دارد قضا. چاره دفعه بلا نبود ستم، چاره احسان باشد و عفو و کرم، گفت از صدقه مردون للبلا داو مرزاکه به صدقه یا فتا صدقه نبود سوختن درویش را کور کردن چشم حلم اندیش را گفت شاه نیکوست خیر و موقع اش لیک چون خیره کنی در موزه اش موزه شاه هی ویرانی است موضع شه اسب هم نادانی است در شریعت هم عطا هم زجر است. شاه را صدر و فرس را درگه است عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش نیست باطل هرچی از دن آفرید از غضب و از و, و از نصح و مکید خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ نیز نفع و ذره هر یکی از موزه است علم از این رو واجب است و نافع است ای بسا زجره که بر مسکین رود در ثواب از نان و حلوا به بود زان که حلوا بی سفرا کند سیلیش از خبس مستنقا کند سیلی در وقت بر مسکین بزن که رهانت آنش از گردن زدن زخم در معنا فتد از خوی بعد، چوب برگرد افتد، نه برنمد. بزم و زندان هست هر بهرام را، بزم مخلص را و زندان خام را. شق باید ریش را مرهم کنی، چرک را در ریش مستحکم کنی، تا خورت مرگوشت را در زیر آن نیم سوده باشد و پنجه زیان گفت دلقک من نمی گویم گذار من همی گویم تحریه بیار هین ره صبر و تعنی در مبند صبر کن اندیشه می کن روز چند در تعنی بر یقین برزنی، گوش مال من با ایقانه کنی، در روش یمشی مکبن خود چرا، چون همی شاید شدن در استوا، مشورت کن با گروه سالهان، بر پیمبر امر شاورهم بدان، امر همشورا شورا برای این بود، که از تشاور سه و کج کمتر رود. این خردها چون مسابیه انور است بیست مصباح از یکی روشنتر است بو که مصباح فتت اندرمیان مشتعل گشته ز نور آسمان غیرت حق پرده انگیخت است سفلی و اولوی به هم آمیخت است گفت سیر و می طلب اندر جهان بخت و روزی را همی کن امتحان در مجالس می طلب اندر عقول آنچنان عقلی که بود اندر رسول ز آنکه میراس از رسول آن است و بس که ببیند غیب ها از پیش و پس در بسرها می طلب هم آن بسر که نتابد شرح آن این مختصر بهره این کرده است من آن باشکو از ترهاب بس شدن خلوت به کوه تا نگردد فوت این نو التقا کان نظر بخت است و اکسیر بقا در میان صالحان یک اصله است بر سر توقیعش از سلطان سهی است کاندعا شد با اجابت مقترن کف او نبود کبار انسو جن در میریش آنکه که و حامز است حجت ایشان بر حق داهز است که چما او را خود افراشتیم عذر و حجت از میان برداشتیم قبله را چون کرد دست حق عیان پس تحری بعد از این مردود دان هین بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر یک زمان زین قبله گر زاهل شوی، سخره هر قبله باطل شوی. چون شوی تمیز ده را ناسپاس، بچهد از تو خطرت قبله شناس. گر از این انبار خواهی بر و بر، نیم ساعت همز همدردان مبر. که دراندم که ببری، زين معين مبتلا گردی تو با بهسال قرین